عزیزان باز هم وقت مطالعه کلام خداست. برای ما مایه افتخاره که شما در این برنامه مهم با ما همراه هستین. امروز ما شروع میکنیم و نگاهی خواهیم انداخت به زندگی چند پادشاه اول اسرائیل. چون که قوم اسرائیل خدا رو به عنوان پادشاهشون رد کردن، ما نمونه های خوب و هشدارهایی رو در این زندگی ها خواهیم دید. بیاین در بررسی کتاب اول و دوم سمویل با معلممون همراه بشیم. در این جلسه ما به کتاب های اول و دوم سمویل می رسیم. ما سعی کردیم که شش کتاب تاریخی رو که در این قسمت از عهد قدیم هست مد نظر قرار بدیم. این شش کتاب بارتند از اول و دوم سمویل، اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ. این کتاب های تاریخی به نوشته ها و کتاب های تاریخی پادشاهان معروف هستند. وقتی که به این کتاب ها می رسیم، چیزی که باید حقیقتا دنبالش بگردیم مفهوم پادشاهی خدا هست. وقتی که به عهد جدید برسیم، این مفهوم برامون بسیار مهم خواهد بود. همینطور در این کتاب ها به عنوان کتاب های تاریخی کل کتاب مقدس باید دنبال دو چیز باشیم، نمونه ها و هشدارها یا عبر پولوس گفته این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر می بریم که قایت همه اثار تحقق یافته است این آیات کلیدی عهد قدیم در اول قرنتیان ده یازده به چشم میخوره بنابراین ما همیشه وقتی که وقایه تاریخ کتاب مقدس رو میخونیم باید دنبال نمونه ها و هشدارها باشیم ما با بسیاری از این موارد در کتاب تاریخی برخورد خواهیم کرد سابقا این دو کتاب به صورت یک کتاب بوده پس وقتی ما کتاب‌های اول دوم سموئیل رو بررسی می‌کنیم در واقع یک کتاب رو بررسی می‌کنیم در کتاب سموئیل بیایید به حقایقی نگاه کنیم که خدا میخواست که در قالب شخصیت‌ها با ما درمیون بذاره شخصیت‌های زیادی وجود دارند که بعضی از اونها نمونه و بعضی هاشون عبرت هستند سه شخصیت اصلی در این دو کتاب یا کتاب سموئیل وجود دارند اول در مورد زندگی و رهبری مردی با ما صحبت میکنه که کتاب به نام اون نامگذاری شده درباره سموئیل سموئیل نمونه بسیار بزرگی برای ما هست الگوی بزرگ و خدا می تونه توسط زندگی سموئیل خیلی چیزها به ما بگه در باب 9 تا 15 شخصیت اصلی اولین پادشاه اسرائیل یعنی شاول هست زندگی شاول یک هشدار بزرگ و ترسناک برای ما هست. وقتی که به زندگی شاول از نزدیک نگاه می‌کنیم، به صورت کاربردی خواهیم دید که خدا به ما هشداری میده از ابتدای باب شانزده اول سموئیل و در سرتاسر کتاب دوم سموئیل شخصیت اصلی داوود هست. داوود یکی از بهترین پادشاهانی بوده که اسرائیل به خودش دیده و یکی از مهمترین شخصیت‌های کتاب مقدس است. بعضی از این شخصیت ها نابغه های روحانی بودند. یقیناً موسا در رأس همه اینها قرار داره، مخصوصاً وقتی که همت او رو برای کار خدا میبینید. خود سمایل هم مهم هست و تا دقایقی خواهیم دید چرا؟ داوود هم یکی از مهمترین شخصیت هاست و وقتی که سهم او رو در انجام کار خدا بررسی میکنیم و همینطور فضایی رو که کتاب مقدس به داستان زندگی او اختصاص داده می متوجه می‌شیم. یادتونه که در کتاب پیدایش یازده باب اول به تاریخ کائنات و زمین و تاریخ تمدن قوم اختصاص یافته بود که خدا فکر می کرد ما باید درباره اونها بدونیم. تاریخ مرد، زن، زبان و بسیاری چیزهای دیگه. توجه دارید که از باب دوازده تا بیست و دو ما فقط در مورد یک مرد شنیدیم. ابراهیم ابراهیم تا جایی که به خدا مربوط می شد، بسیار مهمتر از تاریخ پیدایش زمین. و دیگر چیزهایی بود که در یازده باب اول کتاب پیدایش وجود داشت به نظر میرسه که روح القدس اهمیت بسیاری به مقدار فضای قائل هست که به موضوعات مختلف الهامی ثبت شده در کتاب مقدس اختصاص یافته ما میتونیم بگیم که اونها مهم هستند چون کتاب مقدس فضای زیادی رو به اونها اختصاص داده وقتی به داود از این دیدگاه نگاه کنید متوجه میشید که او چقدر مهمه چندین باب برای گزارش زندگی نامه و اطلاعات در مورد این مرد اختصاص داده شده داوود نه تنها به این دلیل مهمه که نیمی از کتاب اول سموئیل و تمامی کتاب دوم سموئیل درباره او صحبت می کنه بلکه به این دلیل مهم هست که او نیمی از کتاب مزامیر رو نوشته. مزامیر کتاب محبوب من در کتاب مقدس هست من متوجه شدم که اگر شما زندگی نامه این مرد رو بخونید میتونید با درک و دیدگاهی واضحتر به کتاب مزامیر داوود نزدیک بشید. وقتی به بسیاری از مزامیر میرسید که داوود نوشته، با نوشتههایی مواجه میشید که به شما میگه در اون زمان که او این مزمور رو مینوشته چی در زندگی او جریان داشته. اگر با کتاب اول و دوم ساموئل و با زمینه تاریخی کتاب مزامیر آشنایی داشته باشید، اون میتونه به شما درک بهتری از پیام و کاربرد واقعی مزامیر بده. پس می‌بینید که داوود بسیار مهم هست و به خاطر فضایی که در کتاب اول و دوم سموئیل به زندگی او اختصاص داده شده و همینطور به خاطر مزامیر او. سه شخصیتی که می‌خواهیم به اونها نگاه کنیم، عمدتا تا از در سموئیل، و داوود. اول نگاهی به سموئیل بیندازیم. هشتبا اول کتاب اول سموئیل درباره این مرد با ما صحبت میکنه. معنی اسم سموئیل یعنی خداوند میشنود هست. هر بار که در کتاب مقدس نامی به ایل ختم میشه بدونید که اون اسم با خداوند رابطه داره. مانند دانیال کلمه ابری خدا ایل هست. کلمه دیگه برای خدا یهوه بود. اسم شنیده از خدا اسمی بسیار با مصما برای این مرد هست. سمایل به دنیا آمد چون که خدا دعای مادر او رو شنید. مادر او زنی بود به نام هننا و او هم نمونه بزرگی در صفحات کتاب مقدس هست صدها هزاران و شاید حتی میلیون ها کودک به هنگام تعمید دادن به خاطر نمونه الهام بخش هننا وقف مسیح می شند هننا نازا بود در اون ایام عقیده بر این بود که داشتن یک فرزند نشانه ای از برکات خدا بود بنابراین هننا از خدا درخواست میکنه او روی خدا رو می و نزد او به خاطر فرزند گریه میکنه آنچنان با شور و اشتیاق برای تولد سمائیل دعا میکرد که ایلی کاهن پیر وقتی او را دید که دعا میکنه فکر کرد که او مست هست. ایلی به حنا گفت ای زن شرابت را از خود دور کن هننا به ایلی توضیح داد که مست نیست بلکه با اشتیاق از خداوند میخواد که برای او فرزندی بده کاهن پیر ایلی آنچنان تحت تاثیر قرار گرفت که برای او طلب برکت کرد و گفت به سلامتی برو و خدای اسرائیل مسئلتی را که از او طلب نمودی تو را عطا فرماید و خدا عطا فرمود هننا متقاعد شد بعد از اینکه سموئیل متولد شد و از شیر گرفته شد هننا او را گرفت و به معبد آورد و عملا سموئیل رو به خداوند وقف کرد تا نزد ایلی خداوند رو خدمت کنه وقف کردن به معنی رها کردن یا تسلیم کردن هست هننا عملا زندگی نوزادش سموئیل رو رها و تسلیم خدا کرد سمویل به دنیا آمد چون خدا دعای حنا رو شنید و به این دلیل اسم او را سموئیل یا خداوند می شنود گذاشتند که اسمی با مسمه بود. این اسم به این لحاظ نیز با مسمه هست چون که وقتی سموئیل کودکی بود که در معبد نزد کاهن بزرگ می شد شخصا شخصا صدای خدا رو شنید. خدا با او درباره چیز بسیار ترسناکی صحبت کرد. کاهن پیر که سمویل را مانند یک پدر بزرگ می کرد از خدا نافرمانی می کرد ایلی پسرانش را تربیت نکرد شرارت های زیادی در معبد انجام می شد صرفاً به خاطر اینکه ایلی پسرانش را تربیت نکرده بود خدا با سمایل کوچک صحبت کرد و توسط اون پسر بچه پیامی به کاهن پیر داد که قرار است از کاهنی برکنار شود چون که در تربیت پسرانش کوتاهی کرده بود پس نام سموئیل شنیده از خدا اسمی با مسما بود اسم شنیده از خدا همینطور وقتی که او مردی بالغ شد نیز برای او برازنده بود. کتاب مقدس میگه تمامی اسرائیل از دان تا شبه، یعنی از اسرائیل شمالی تا اسرائیل جنوبی وقتی سمویل موعظه کرد فهمیدند که نبی در بین اونها هست و خدا اجازه نخواهد داد حتی یک کلمه بر زمین بیفتد. وقتی او خدمتش رو به عنوان نبی بزرگ شروع کرد تمام اسرائیل کلام خدا رو به واسطه این مرد شنیدند. پس به این سه دلیل شنیده از خدا نامی کاملا به جا و شایسته برای آن مرد بود سمایل از خیلی جهات یک نمونه است اولاً او و مادرش حنا نمونه هایی هستند از چیزی که امروز به اون پرورش مسیحی یا تعلیمات مسیحی میگیم بسیاری بر این باورند که اگر مردی میخواهد خادمی موثر برای خدا باشه به عنوان یک خادم، نبی یا کاهن او باید در دنیا باشه و واقعا از لذتهای دنیا بهرمند بشه. او باید در جایی که مردم ایمان ندارند و با ایمان او می جنگن قرار بگیره. او باید با مردم دنیا وقت بگذاره. فرض بر این هست که به این ترتیب او کاهن، نبی یا خادم خوبی خواهد شد. زندگی سمویل و زندگی یحیای تعمید دهنده دلیلی کاملا برخلاف اون دیدگاه است. عیسی گفت که بزرگترین نبی که تا کنون به دنیا آمده ی تعمید دهنده است والدین خدا ترس او زکریا و الیسابات یحیای تعمید دهنده رو در بیابان بزرگ کردند اونها عملا یهیا رو در همون بیابان به دنیا آوردند و او رو تماما در ایمان پرورش دادند تا اینکه او در سی سالگی خدمت خودش رو آغاز کرد یحیا فقط هجده ماه موعظه کرد با این حال عیسی او رو بزرگترین کاهن نامید که دنیا به خودش دیده بود بزرگترین کاهنی که از یک زن به دنیا آمده بود. یهیا به خاطر تأثیر گذاردن بر دنیا متولد نشد. او دوره های پرورشی رو تجربه کرد تا اینکه برای خدمتش آماده بشه. سمویل هم مثل تمید تمیدهنده است. کاهن پیر ایلی سمویل را در معبد نگه داشت. سموئیل از زمانی که یک کودک بود با کلام خدا و چیزهای مربوط به خدا بزرگ شد. بنابراین سموئیل نمونه خوبی از این هست که وقتی کودکان در ایمان رشد می کنند چه اتفاقی می افته؟ زندگی سمویل نشانه خوبی برای تعلیم کودکان مسیحی هست. کنت اسکاتلت روریت کتابی نوشته که به نظر من بهترین کتاب آموزشی در تاریخ کلیسا هست. او زمانی رئیس مدرسه الهیاتی و تاریخ کلیسا در ییل بود. او گفته کسانی که از تاریخ کلیسای عیسی مسیح بر دنیا تأثیر میذارند اکثرا در خانه های مسیحی رشد کردند. فکر نکنید که برای تأثیر گذاشتن در کلیسای مسیح و یک خادم موثر بودن باید یک تبعکار یا سیاستمدار فاسد بود وقتی چنین اتفاقی میفته این یک قاعده نیست بلکه استثناء است حقیقت اینه که خادمینی که به خاطر مسیح به سراسر دنیا میرند اکثرا فرزندان خانه های مسیحی و یا فرزندان خادمین هستند فرزندان خادمین که در محیط خدمت رشد می‌کنند اکثرا کسانی هستند که امروزه برای خدا کار می‌کنند این خادمین درست مانند سموئیل و یحیای تعمیددهنده پرورش یافتند سموئیل سهم بسزایی در انجام کارهای خدا داشت سموئیل در تاریخ یهود یک علامت راهنما بود سموئیل اسرائیل را از دوره تاریک روحانی خارج کرد در اون ایام که داوران حکومت می‌کردند چهارصد سالی که در کتاب داوران بررسی کردیم، یادتون میاد که اون روزها دوره تاریکی روحانی اسرائیل بود. اون روزها یک خلای رهبری وجود داشت. در اون دوره از تاریخ یهود هیچ رهبری وجود نداشت. بعضی از محققین سمایل را به عنوان آخرین داور معرفی کردند. سمایل نه تنها یک ترکیبی از یک نبی، کاهن و داور بود، بلکه یک رهبر سیاسی هم بود. سموئل از جمله مردانی مثل بیلیگراهان بود که رئیس جمهور هم بود. سموئل برای رهبران بزرگی که بعد از او می آمدند زمینه رو فراهم کرد از جمله داوود و برخی از انبیای بزرگ که در طول کتابهای تاریخی با آنها برخورد خواهیم کرد. سمویل نماینده ای بود که خدا به وسیله او بزرگترین پادشاه اسرائیل داوود را مسح کرد. در سرتاسر تمام زندگیش سموئل یک رهبر روحانی و سیاسی بزرگ بود. او تا به انتها خوب پیش رفت. بسیاری از این مردان خدا در کتاب مقدس و مردانی در تاریخ خودمون تا به آخر خوب پیش نرفتند. اونها شاید خدمات بزرگی داشتند، اما تا به آخر خوب پیش نرفتند. سمویل کسی بود که تا به انتها خوب پیش رفت. زندگی سموئیل سرمشق بزرگی برای ما هست. اما زندگی شعول در کتاب مقدس به عنوان هشداری بزرگ برای من و شما قید شده. شاول چهره بسیار جدال برانگیز در کتاب مقدس هست. بسیاری مناقشات الهیاتی در بین قوم خدا هست. یکی از اونها اینه وقتی که تولد دوباره یافتید و وقتی که واقعا زندگی روحانی طبق کتاب مقدس داشتید، آیا این امکان وجود داره که اون را از دست بدید؟ میتونید امروز نجات پیدا کنید و فردا دوباره گم بشید؟ آیا اگر پسر گم شده در خوکدانی میمرد، آیا او گم شده بود؟ این سوال به دو طریق پاسخ داده شده و به نظر میرسه که برای هر دو آیاتی وجود داره. کلیسا هرگز بر سر این موضوع توافق نکرده. بعضی ها میگن نه، شما نمیتونید نجاتتون را از دست بدید شاید به مدتی اون را از دست بدید اما همیشه مثل پسر گمشده شده برمیگردید. از طرفی بعضیا میگن بله، میتونید نجاتتون را از دست بدید. امروز میتونید نجات پیدا کنید و فردا از دست بدید. بعضیها بر این باورند که شما وقتی گم میشید و تصمیم میگیرید که به جای اراده خدا اراده خودتون را انجام بدید، باید دوباره و دوباره متولد بشید. از اون جایی که من به آموزههای کتاب مقدس، از هوکم خدا و نمایندگان او باور دارم، بر این باور نیستم که کسی که نجات حقیقی و واقعی داره و واقعا تولد تازه یافته نجاتش را از دست بده. شاول یک دلیل مکتوب برای این بحث هست. مخصوصا از نظر اون افرادی که باور دارند شما میتونید روزی مردی روحانی باشید و روز بعد مردی بی خدا شاول به نظر میرسه تجربه روحانی حقیقی داره و مردی روحانی هست. وقتی اول او رو ملاقات میکنید شاول اصلا مرد روحانی نبود اما تجربه ای بزرگ داشت سوالی در اول سموئل پرسیده شده مردم میپرسیدن این چیز که با پسر قیس واقع شده آیا شاول نیز از جمله انبیا است به خاطر تجربه‌ای که او داشت در بین انبیا بود و داشت نبوت میکرد. ما میخونیم که خدا به شاول قلبی تازه میبخشه و او رو مردی تازه میسازه. کاملا بدیهیه وقتی که به مطالعه زندگی شاول میپردازیم او این روحانیت را رو از دست میده. در باب نهم اول سمویل شما با شاول آشنا میشید. مردی به نام قیس بود که پسری به نام شاول داشت. ما میخونیم که شاول یک سر و گردن از تمامی مردان اون سرزمین بلندتر بود شاول همچنین ترین مرد اسرائیل بود در اون روزها اونها فکر میکردن قد بلند بودن زیبایی هست من دوتا پسر دارم که خیلی قد بلند هستند. وقتی یکی از پسرانم پانزده ساله بود و هنوز در حال رشد بود او خواست که با من حرف بزنه او میگفت فکر میکنم که بدون شک من یک اشکالی دارم بچه ها مسخره میکنن بچه ها او رو به خاطر قدش و پاهای بزرگش مسخره می‌کردند. من تمام سعیم رو کردم که پسرم رو قانع کنم که قد بلندی زیبایی. من از روزنامه ها و مجلات به نشون دادم که هیچ منکن مثل پدر او کوتاه قد و چاق نیست. تمام ها قد بلند و لاغر بودند. من مقاله‌ای پیدا کردم که در اون نوشته بود گاهگاهی مردی که برای ریاست یک شرکت انتخاب میشه یک مرد بلند قطع هست. سعی کردم او رو قانع کنم که من تنها کسی نیستم که باور دارم قد بلندی زیبایی در اعتداد قدیم اونها واقعاً بر این باور بودن این مهم بود که شاول از هر کسی قد بلندتر بود و خوشتیپ‌تر بود. وقتی با شاول مواجه میشید، به نظر نمیاد که خیلی روحانی باشه. چند تا از الاغهای پدرش گم شده بودند و شاول با یکی از دوستانش به دنبال الاغها رفته بودند و موفق به یافتن اونها نشده بودند. دیگه چیزی نمونده بود که دست بکشند که دوست شاول گفت من میدونم که این اطراف یک نبی هست که هر چیزی که تو میخوای بدونی میتونه به تو بگه چرا در مورد الاقها از او سوال نکنیم پس با هم به جایگاه سموئیل رفتن تا سوراخ علاخا را از او بگیرن. کتاب مقدس میگه روز قبل خدا با سموئیل صحبت کرده و به او گفته بود فردا مثل این وقت شخصی را از زمین بنیامین نزد تو میفرستم اورامس نما تا برقوم من اسرائیل رئیس باشه بنابراین این می میدونست که قرار است شاول بیاد وقتی شاول محل زندگی نبی رو پیدا کرد و میخواست از او در مورد اولاخا سوال کنه شاول شوکه شد چون سموئیل او را میشناخت و منتظر او بود سموئیل شاول رو به یک مهمانی بزرگ دعوت کرد بخشی از گوشتی رو که برای شاول جدا کرده بود به او داد و گفت من این غذا رو برای تو تدارک دیدم و منتظر تو بودم زمنا نگران اولاغ هم نباش، اونها پیدا شدهاند از اون گذشته تمامی ثروت اسرائیل امروز از آن تو هست. اینجا یک جمله بسیار آشنا هست. وقتی سمایل این رو گفت، شاهل در پاسخ گفت آیا من بنیامینی و از کوچکترین اسباط بین اسرائیل نیستم؟ و آیا قبیله من از جمیع قبایل سبت بنیامین کوچکتر نیست؟ پس چرا مثل این سخنان به من میگویی؟ این به نظرتون آشنا نمیاد؟ بسیاری از رهبران وقتی مأموریت یافتند رهبر بشن، چنین احساسی داشتند که شما انتخاب درستی نکردید. من هیچ چی نیستم. من صفرم. من کوچکترین هستم. من ضعیف هستم. این چیزیه که جتون هم گفت. این چیزیه که بسیاری از اونها از جمله موسی هم گفتند. یک چنین رفتاری نشانه خوبی برای یک رهبر هست. آیا جنگ داخلی رو در پایان کتاب داوران به یاد میارید؟ طایفه بنیامین با بقیه طایفه ها جنگ کرد و تقریبا تمامی اونها رو شکست داد. بعد خدا مداخله کرد و به یازده طایفه دیگر کمک کرد. بعد یازده طایفه دیگر طایفه بنیامین رو تقریبا نابود کردند. فقط 600 بنیامینی باقی مانده بود. وقتی خدا برای دومین بار مداخله کرد گفت نمیخوام که هیچ کدوم از طایفه های من از روی زمین محو بشن. پس 600 نفر از بازماندگان بنیامین به گوشه‌ای در بیابان پناه بردند و طایفه ها زنانی پیدا کردند و به بنیامینی ها زنانی دادند و گفتند اینجا کسی شوید زیرا خدا گفته که نمیخواد هیچ کدوم از طایفه هاش از روی زمین محو بشه این سوابق خانواده شاول بود تعجبی نداره که شاول گفته من از طایفه ای ضعیف هستم و کوچکترین کوچکترها هستم اما سموئل او را به عنوان اولین پادشاه اسرائیل مس کرد چون که خدا به سموئل گفت شاول رو مس کن. من پایان این داستان رو خیلی دوست دارم. پس شاول اون روز با سمایل نان را پاره کردند. مطمئنم که او هرگز روزی که با سمایل نان پاره کرد فراموش نکرد. سالها پیش قرار بود خادمی از واشنگتن برای موعظه به کلیسا ما بیاد. من به همراه دو نفر برای استقبال او و همراهانش به فرودگاه رفتیم. قرار بود او و همراهانش شام مهمان ما باشند. از این رو اونا رو به یک رستوران بردیم. اما متاسفانه پول کافی برای پذیرایی از اون عده به همراه نداشتم و توی دلم به حالتی مثل دعا از خدا می‌خواستم که کاش همه این افراد ماهی بخورن. در این صورت میتونم حساب همه رو بپردازم در حالی که این افکار در سرم بود ناگهان اون خادمی که سرپرست گروه بود اعلام کرد من ماهی خواهم خورد و راستش فکر می‌کنم که چون عجله داریم بهتر همه ماهی بخورن. در اون لحظه حسی عجیبی داشتم احساس می کردم که این مرد در هر لحظه با خدا ارتباط داره بعد وقتی او رو به کلیسایی که قرار بود در اون سخنرانی کنه رسوندم، او مرا به گوشه‌ای کشید و گفت برای فردا از خدا چی میخوای؟ راستش رو بخواید نمیشد از قیافه او فهمید که کی با شما صحبت می کنه و کی با خدا صحبت می کنه. من به او گفتم فردا یک کلاس مهم دارم که باید در اون کلاس درس بدم و میخوام برای من دعا کنی. اون شبو برای من دعا کرد روز بعد جلسه کلاس ما اونقدر پر از روح بود که میشد کاملا تصور کرد که ی حاضران در جلسه با روح خدا م شده بودن من هرگز روزی رو که با اون شخص غذا خوردم فراموش نمیکنم اون تجربه ای بود که زندگی منو عوض کرد و فکر می کنم این چکیده ای از تجربه ای بود که شاول در موقع غذا خوردن با باسمیل داشته شاول م شد که پادشاه بشم اما پادشاه خوبی نبود بنابراین زندگی او برای ما مثل یک عبرت هست شاول میتونست به لحاظ روحانی مرد بزرگی باشه. بعدها در داستان سموئل چیزی به شاول گفت که به نظر من حیرت انگیزه. وقتی که سموئل شاول را از پادشاهی عزل کرد، سموئل گفت: "نقشه خدا این بود که تو و نسل تو تا ابد در اسرائیل شاه باشید. اما امروز خداوند سلطنت اسرائیل را از تو پاره کرده، آن را به همسایت که از تو بهتر است داده است." به نظر میرسه که باید پذیرفت شاول و نسل او میتونستن تا عبد پادشاه باشند. اما شاول تصمیم گرفت در مقابل خدا ناعتاعتی کنه و خدا او را از پادشاهی خل کرد. شاول به نظر میرسید که عمیقا تحت تأثیر تجربیات روحانیش بوده. نبوت های بسیار خاصی کرده. سمایل گفته امروز بعد از رفتنت از نزد من دو مرد نزد قبر راهیل به سرحد بنیامین در سلسخ خواهی یافت و گفت. تو را خواهند علاغی که برای جستن آنها رفته بودی پیدا شده است و اینک پدرت فکر علاغها را ترک کرده به فکر شما افتاده است و میگوید به جهت پسرم چه کنم چون از آنجا پیش رفتی و نزد بلوط تابور رسیدی در آنجا سه مرد خواهی یافت که به حضور خدا به بیت ایل می‌روند که یکی از آنها سه بزغاله دارد و دیگری سه قرسنان و سومی یک مشک شراب و سلامتی تو را خواهند پرسید و دونان به تو خواهند داد که از دست ایشان خواهی گرفت بعد از آن به جبعه خدا که در آنجا قراول فلسطینیان هست خواهی آمد و چون در آنجا نزدیک شهر برسی گروهی از انبیا که از مکان بلند به زیر می و در پیش ایشان چنگ و دف و نای و بربت بوده نبوت می به تو خواهند برخورد تمامی این چیزها واقع شد مهمترین نشانه ای که سمایل پیشبینی کرد این بود که گفت روح خداوند بر تو مستولی شده با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد دیگر متبدل خواهی شد این واقعه برای شاول پیش آمد و می بینیم که او بسیار تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت اما شاول دو بار در مقابل خدا ناهی کرد شاول وارد نبردی با فلسطینیان شد و ارتش شاول فرار می‌کردند و او به کسی نیاز داشت که برای ارتش دعا کنه و قربانی تقدیم کنه او می‌دونست که قرار سموئیل طی 7 روز آینده بیاد و وقتی هفت روز گذشت و سموئل نیومد شاول شخصا کارها رو به عهده گرفت. او جای سموئیل رو گرفت. او نقش یک کاهن رو به عهده گرفت. وقتی سموئل وارد شد، خیلی از دست شاول ناراحت شد. این واقعه در باب سیزدهم اول سموئیل ثبت شده. در همین باب هست که ما برای اولین بار در مورد داوود میشنویم که سموئیل به شاول گفت: احمقانه عمل نمودی و امری که یهوه خدایت به تو امر فرموده است به جا نیاوردی. زیرا که حال خداوند سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد قرار می داشت لیکن الان سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خیش مردی موافق دل خود طلب نموده است و خداوند او را معمور کرده است که پیشوای قوم وی باشد چون که تو فرمان خداوند را نگاه نداشتی این اولین باری هست که شما در مورد داوود میشنوید. داوود همون مردی بود که موافق دل خدا بود او تمام اراده خدا رو به جا می آورد به نظر میرسه که خدا به شاول یک شانس دیگه هم داده چون که بعد می بینیم که شاول یک بار دیگه در مقابل خدانت تعطی میکنه شاول مأموریت یافته بود که بره و با امالیق جنگ کنه و تمامی اونها رو از روی زمین محو کنه او مأموریت داشت که هر چیزی رو از بین ببره همه ی مردم تمام قنایم به وضوح شرط داده شده بود که حتی حیوانات رو هم بکشه کتاب مقدس این مأموریت رو اینگونه شرط داده پس الان برو و امالیق رو شکست داده جمیع مایملک ایشان را بلکل نابود ساز و بر ایشان شفقت نفرما بلکه مرد و زن و طفل و شیرخارب و شطر و علاق را بکش اما وقتی ارتش شاول بر امالیق قلب کرد شاول و مردانش بهترین هر چیز رو برای خودشون نگه داشتند و کلام خداوند بر سمویل نازل شده گفت پشیمان شدم که شاول رو ساختم. زیرا از پیروی من برگشته کلام مرا به جانه آورده است باز هم ناعتاعتی کرده است باید او را خل کنی وقتی سمایل را شنید تمام شب نزد خدا فریاد برآورد و با امدادان سمایل برخواست تا شاول را ملاقات نماید و سموئیل را خبر داده گفتند که شاول به کرمل آمد و اینک به جهت خیش ستونی نسب نموده و دور زده گذشت و در جلجال فرود آمده است من فکر می کنم که توی کتاب مقدس مزاهایی هست. مثلا وقتی سمایل شاول رو پیدا کرد، شاول گفت برکت خداوند بر تو باد. من فرمان خداوند رو به جا آوردم و سمایل گفت پس این صدای گوسفندان در گوش من و بانگ گاوان که می چیست؟ معنی اینها چیه؟ شاول گفت میخواهیم اینها را برای یهوه خدایت قربانی کنیم. اینجا یکی از بزرگترین متن‌های کتاب مقدس هست. سمایل به شاول میگه آیا خداوند به قربانی های سوختنی و زبایح خوشنود است یا به اطاعت فرمان خداوند؟ اطاعت خیلی بهتر از قربانی کردن هست. او بیشتر علاقمند اینه که شما به او گوش کنید و از او اطاعت کنید تا اینکه برای او قربانی های پرواری بیارید. سرکشی به اندازه همان گناه جادوگری بد هست. خیر سری بدتر از بودپرستیه. در همون لحظه، شاول اعتراف کرد من گناه کردم اما سموئیل خدا منو میبخشه. بخشه لطفاً با من بیا تا برای پرستش خدا بریم که مردم ببینند همه چیز بین من و تو خوب هست سموئیل گفت این فایده ای نداره تو فرمان خدا رو رد کردی و خدا تو رو رد کرده وقتی که برگشت که بره شاول به دامن او چنگ زد و دامنش پاره شد بعد سموئیل گفت امروز خداوند سلطنت اسرائیل را از تو پاره کرده است وان را به همسایت که استو بهتر است داده است. بعد از این واقعه شاول در سراشیبی قرار گرفت. زندگی شاول یک هشدار هست. کلمه ای هست که ما در اول سموئیل یاد می‌گیریم. اون کلمه ایخابوت هست است که معنیش اینه: جلال زایل شد. ظاهراً در عهد قدیم روح خدا بر مردم می آمد. مثلا مثل سامسون، اگر اونها از روح خدا اطاعت نمی کردن، روح خدا ترک می کرد. این اتفاق برای شاول هم پیش آمد. و این زندگی شاول رو تبدیل به یک هشدار و عبرتی بزرگ برای من و شما کرد. میشه گفت که زندگی شاول هشداری هست برای کسانی که مس دارند و می میکنند. این امکان هست که مس خداوند بر شما باشه و بعد نافاتیعی کنید. اما مس شخص نافرمان زیاد طول نمیکشه. خدا کسی رو که مطیع اون نیست مس نمیکنه. کلید داشتن مس دائم روح القدس اطاعت هست کلید تولد تازه ایمان هست. کلید گرفتن مسح خدا در زندگیتون اطاعت هست. وقتی مثل شاول نا اطاعتی می کنیم، زندگی ما تبدیل به حشداری میشه. چونکه چون که خدا بر روی زندگی ما ایخابود می نویسه. یعنی جلال خدا زایل شده است. وقتی اول سموئیل رو می خونید و مطالعه می کنید، بذارید زندگی شاول عبرتی برای شما باشه و از اون درس بگیرید. هر روز به ما فرصت داده میشه که از او اطاعت کنیم و یا نا اطاعتی. ما در زندگی اول شاول دیدیم که او نا اطاعتی کرد و به این دلیل برکات خدا رو در زندگیش از دست داد. دانشوری عزیز، امیدواریم که این درس ها شما را تشویق کنه که در ایمانتون استوار بیستین. از کلام او اطاعت کنین و به لذت بردن از برکات او ادامه بدین. باشد که تا برنامه بعدی در حالی که در اطاعت و پیروزی گام بر می‌دارید شادی رو تجربه کنین